Thank mm -hmm. you. فصل اول بخش دوم تمام رجال آرزو داشتند که استاد صورت آنها را بسازد می آمدند از او خواهش می‌کردند التماس می‌کردند اما او حتی در دورانی که احتیاج به کمک داشت به این خفت تندر در در صورتی که تصویر آقا رجب نوکرش را بارها کشیده بود پرده هایی که استاد از این نوکر ساده وفادار که مسلما یکی از نزدیکترین ترین کسان او بوده کشیده نشان می دهد که چه خوب در روحیه این آدم معمولی تعمق کرده و میرساند که با چه دقتی حالات مختلف او را ثبت کرده است شاید دلیل مهم دوستی و علاقه استاد با این دهاتی همدانی این بوده که استاد به ازی از صفات خود را در نوکر صدیقش منعکس می دیده. آقا رجب هم رازدار بود و دشوار می چیزی را که خودش نمی خواست از او درآورد. استاد آقا رجب را در یکی از دهات اطراف همدان به اسم ورزک پیدا کرده بود. نقاش در شب محتاب روی بام دراز کشیده بوده است و صدای گریه بچه‌ای بچه که از خانه همسایه می آمد نگذاشت بخوابد. نزدیک سهر استاد بی مقدمه به سراغ بچه می رود. میبیند که بچهی دو ساله سال گرفته غ می و دارد می میرد. آقا رجب و مادر بچه کنار گهوار کثیف کس کرده و هر دو منتظر مرگ او بودند. استاد بچه را در آب گرم میشویید او را در یکی از پیراهنهای خودش میپیچد چند تا قرص به او میدهد و روز بعد که بچه حال میآید استاد با آبرنگ تصویری از او میکشد و به پدرش میبخشد دو سال بعد آقا رجب و بچه دومش که گرفتار همان بیماری شده بود با زنش و بچه 4 سالش در خانه استاد سبز میشود نشانی استاد را از کربلای حسین پیشکار خان گرفته بود و آمده بود که استاد بچهش را شفا بدهد چون در دهات کسی از این معجزه‌ها بلد نبود از آن زمان آقا رجب و زنش و بچه هایش در خانه استاد ماکان منزل دارند. اقلن بیست و چند تر تا آنجا که من اطلاع دارم استاد از این چاکر صدیق باقی گذاشته و او را در حال قذب، استراب، ترس، دست پاچگی و بیحالی نشان داده است. در یکی از این ترها آقا رجب خوابیده و وضع تنه و بازوها و لنگ درازش با چند خط نمایان است. ریافه آرام و غیر قابل نفوذ به نظر می رسد استاد سعی کرده که باتن او را نشان بدهد، اما چیزی دستگیر تماشا کننده نمی شود. فقط آنچه هویداست اثرات دردناکی یک گذشته پرمشقت است. دوسه پرده آبرنگ یا رنگ روغنی از آقا رجب در موزه مدرسه نقاشی به نام استاد باقی است و خود او هم هنوز در این مدرسه کتابهاد چندین بار اسم عوض کرده اگرچه ظاهرا فراش است و حقوق فراشی می گیرد. اما در واقع بزرگتر و همه کار است. به طوری که من جرأت ندارم بدون اجازه او تابلوها را جابجا کنم. آقا رجب حرف نمیزند. از گذشته استاد هیچ یادش نیست. حتی وقایه مهمی را که همه میدانند به زور باید به یاد او آورد. آقا رجب میگوید: استاد فقط یک بار حاضر شد که تصویری از یکی از رجال بکشد و آن رجل خیلی تاش بود که در بو های قدرت و کپکبه از مسافرت فرنگستان به ایران برگشته بود. در آن دوران اقلب مردم از او بیش از شاه حساب میبردند و واقعا او را دیکتاتور ایران میدانستند روزی موقعی که خیلتاش در پاریس بود عکسی از او در ایلوستراسیون دیده شد خیلتاش دارد از پله های قصر الیزه پایین میآید میگویم وقتی استاد این عکس را دید خوشش آمد و گفت به اندازه یک سر و گردن از اربابش بزرگتر است کاش بتواند آبروی ایران را حفظ بکند من این عکس را در ایلوستراسیون دیدم خیلتاش با سینه پهن و سر بلند در حالی که هیچ چیز ساختگی در حرکاتش دیده نمی شود دارد دارد وقار و ابهت مانند اینکه موفقیت بزرگی نصیب شده از است ها پایین میآید. وقتی خیلتاش به ایران آمد، استاد در حضور دوستانش ابراز تمایل کرد که صورت وزیر را بسازد. چند روز بعد، حضرت اشرف خودشان بیخبر به خانه استاد آمدند. نیم ساعتی به تماشای کارهای استاد پرداختند و بعد فرمودند شنیدم شما شاگرد استفانوی ایتالیایی ایتالیایی اید اوورهای او را در سفر اخیر در پاریس دیدم. با خودش هم آشنا شدم. او به من گفت که شما شاگردش بوده اید اما من هیچ شباهتی یا عقلان تأثیری از اکل او در کارهای شما نمی بینم استاد گفت: چطور میخواهید کارهای ناچیز مرا با آثار استفانو مقایسه کنید؟ من یکی از شاگردان او بودم. طبیعی است که اثرات تعلیمات او در کارهای من هویدا نیست. با وجود این من سعی می میکنم که پیرو مکتب او باشم. خیلتاش لبخندی زد و گفت: شما هم آنقدر مدست نباشید. از چند روز بعد خیلتاش هفته دو سه ساعت هر وقت فرصت میکرد مخصوصا وسط روز میآمد و کتابی در دست میگرفت و میخوان و استاد صورت او را میکشید. پس از دو سه هفته شاید روز پنجم و ششم خیلتاش انگامی که روی صندلی راحتی نشسته بود و کتاب میخوان و استاد داشت با آبرنگ کار میکرد رویش را رو از کتاب برگرداند و گفت علا حضرت همایونی به کار شما بسیار علاقمند هستند استاد چشمش را از تخت شستی که در دستاش بلند کرد و بیخیال گفت تشکر میکنم خیلتاش مدتی شاید یک دقیقه تمام به صورت استاد خیره نگاه کرد البته میدانست که این گفته او تاثیر خوشی در نقاش داشته است مسلم از که خیلتاش منتظر تملق و ریا از جانب استاد نبود اما دیگر توقعی هم نداشت. خیلتاش منتظر شد تا نقاش به او نگاه کند و همین که استاد قلمویش را به رنگ آغشته کرد و میخواست روی پرده بکشد نگاهش به صورت وزیر افتاد و از قیز و قذب او تعجب کرد در همین لحظه خیلتاش پرسید میل نداشتید تصویری از علا حضرت حضررتها مایونی بکشید؟ رنگ از صورت استاد پرید لبهایش مثل گشت سفید شد. خنده دروغی کرد قلمو را روی میز گذاشت از پشت تابلو آمد این طرف و گفت نخیر قربان من تصویر کسانی را که میل دارم می کشم این صورت‌های دور و بر خودتان را تماشا کنید اینها رو من دوست دارم چشمایی حضرت اشرف پر از خون شد نگاهی به تابلوهای اطراف انداخت و دهان باز مارگیری که میخواهد سر مار را گاز بگیرد تنفر او را برانگیخت استاد داش از جا در اما خیلتاش که مرد مسلط تری بود از روی صندلی برخواست. دستی روی شانه او زد و گفت من برای شما احترام قائل هستم. وضع شما رو میفهمم. چه احترامی؟ خیلتاش دوید توی حرف استاد سخت نگیرید. مرحمت شما زیاد. استاد مدتی در اتاق تنها بود. نیم ساعت بعد که نوکرش وارد اتاق شد دید روی چار پای کنار پنجره نشسته. سرش را در هر دو طرف دستش گرفته آرنجهایش هایش را روی درگاه گذاشته و دارد خیره به آسمان مینه وقتی آقا رجب را دید به خود آمد از روی چهارپای بلند شد با کاردی که با آن رنگ روغن را میتراشید پرده خیلتاش را جر داد و چارچوب راست کتان در آورد و پالتو اش را تن کرد و از خانه بیرون رفت آقا رجب یادش است که استاد روزی نامه‌ای به او داد و آن را به وزارتخانه برد و به پیش خدمت اتاق حضرت اشرف تسلیم کرد و دیگر خیلتاش را در خانه استاد ندید چند روز بعد همان پیش خدمت مخصوص اتاق حضرت اشرف نامه‌ای آورد که به آقا داد من این نامهی خیلتاش را میان اوراق استاد پیدا کردم اینک عین نامه استاد گرامی متاسفم که تصویر مرانا تمام گذاشتید امیدوارم هر وقت فرصت کردید به اتمام آن همت گمارید ارادتمند خیلتاش با وجود این خیلتاش همیشه در حضور جمع احترامات استاد را مراعات کرد. در همان ایام یکی از دانشمندان به نام هند به ایران آمده بود. در حالا وزارت فرهنگ گنجایش 200 تا 250 نفر آدم را داشت، مجلسی به افتخار او ترتیب داده بودند. در دو صفحه اول سردمدارها نشسته بودند. همه وزیران و جمعی از وکیلان و بادمجان در قاپ ها حاضر بودند. در صفحه پنجم استاد دیده میشد. 3 دقیقه قبل از ورود دانشمند هندی خیلتاش وارد تالار شد. فوری آنهایی که در دو سه ردیف اول نشسته بودند از جا برخاستند. خیلتاش بی اعتنا به همه کس جای خود را پیدا کرد و نشست. همه نشستند. بعد متوجه نخست وزیر که دو صندلی آن طرفتر نشسته بود گردید. همین که بلند شد پیش نخست وزیر برود، چشمش به استاد افتاد و گفت: سلام عرض کردم. نقاش متوجه نشد. دو سه نفر با صدای بلند گفتند: جناب استاد حضرت اشرف اظهار لطف فرمودند. استاد خیز شد، سری تکان داد، بدون اینکه در قیافش علایمی از شادی یا خشونتی دیده شود. خیلی تاش گفت، استدعا میکنم، استدعا میکنم. وقتی حوادث زندگی استاد را حلقه حلقه به هم زنجیر میکنیم، میبینیم که سری در زندگیش نهفته است. این حوادث پیوسته و یک دست نیستن. با وجود این پیداست که رشده اسرارآمیزی میزی از میان همه آنها میگذرد، و تا این رشته کش نشود نمیتوان حلقه ها را به هم پیوند داد کسی که از شاه سابق حراسی در دل به خود راه نمیداد و با خیلتاش آنطور رفتار میکرد مرعوب نمیشد. شد مرعوب هم نشد به طوری که بالاخره در تبعید جان داد شاید هم کشته شد چون این مردی چطور ممکن است اسیر چشم های زنی شده باشد من از همان روز اول که به فکر نوشتن تاریخ زندگی نقاش بزرگ ایران افتادم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 در آن دوران هنوز پایههای دیکتاتوری استوار نشده بود هنوز در دستگاه سلطنت ایران عناصری مانند خود خیلتاش پیدا میشدند که هر گونه خفتی را تحمل نمیکردند هنوز در اطراف کشور عناصر یاقی و تاقی هایی داشتند هنوز عناصر منفرد و یا جمع کوچکی گاه به گاه پیدا میشدند که دست از ایستادگی نکشیده بودند هنوز اشخاصی مانند استاد وجود داشتند که در برابر ستمگری و تعدی به حقوق مردم آمادهٔ جانفشانی بودند خیتاجش می‌خواست بدین وسیله خود را تبرئه کند. به علاوه، وجود استاد وسیله‌ای برای تبلیغ تازه به دوران رسیده‌های آن عصر بود. هر کس را که از خارج به ایران می‌آمد به دیدن آثار استاد می‌بردند. به ای تاجر تاج فروش آمریکایی که خود را هنرشناس و پرفسور هنرهای زیبایی جا زده بود، با خرید تصاویری که استاد برای یک مجموعه رباعیات خیام ساخته بود، ثروت هنگفتی به جیب زد. و در این حال داستان ها از هنر رژیم ایران در اروپا و آمریکا نقد کرد. یک عکس استاد که روی صندلی راحتی نشسته و دارد با بچه های آقا رجب شوخی میکند در مجله های آمریکایی منتشر شد. گذشته از هنر نقاشی برنده ترین هربی که در دست استاد بود بیعلاقگی او به قیود و آداب عادی اجتماعی بود. خانوادهش را که اصلا مازندرانی بود به کلی ترک کرده بود. در خانه نسسبتا بزرگی پشت مسجد سپهسالار منزل داشت. خانه بدی به نظر نمی آمد، درخت های بلند چنار و انار و شمشا در تابستان دور حوز سایه مطبوعی می انداختن. و اول بهار، عطل گل سرخ که استاد در قده های بزرگ جا میداد تازیگی و ترابط هوا را حتی در آتالیه خفه و تاریک او هم منعکس می استاد با فروش پرده های نقاشی به اعیان، اواید خوبی کسب می کرد، اما هرچی داشته نداشت و اسطاقه رجب خرج می شد اگرچه خودش به تجملات زندگی کمتر علاقه داشت اما میکوشید که زندگی آقا رجب و بچه های او را که یکی از آنها در آن ایام قبل از تبعید استاد به کلات دوازده سال بود مرفه تر تأمین کند دو تا بچه رجب را مانند بچه های خودش میدانست تمام محبتی که در قلبش بود برای آنها صرف می کرد به خاطر آنها از آنچه از دستش برمیامد کوتاهی نمیکرد اسب با بازی فیروز پسر آقاجب کمتر از آنچه در اختیار یک بچه‌ی خانواده متوسط است نبود فیروس را به دبیرستان فرستاده بود و رفتار این پسر بچه با همشاگردی‌هایش مانند رفتار پسر آقا رجب نبود. معهذا زندگی خودش در سه اتاق میگذشت یکی از آنها کارگاهش بود. هم پر از تابلوهای گوناگون و کتاب‌های به زبان فرانسه و ایتالیایی و چارچوب و رنگ و مقوا و توال و چهارپایه و لوازم دیگر یک کارگاه نقاشی. اغلب در همین اتاق قضا می‌خورد. گاهی هم همانجا روی یک تخته چوبی می‌خوابید.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 در این گونه مواقع تا سحر بیدار میمان و آفتاب که تیغ میزد، تخ را پایین می, پایی می و در کارگاهش که در تابستان گرم و خفه بود می خوابید. خاطرات آقا رجب، همین خاطرات گسسته که از زبان مرد توداری باید بیرون آید، تنها تذکره ای که از زندگانی این مرد عجیب میتوان ترتیب داد. بدبختان آقا رجب مردی عامی و بی سواد است. مثلا او نمیداند که استاد تابلوهای گوناگون را در چه سالهایی کشیده و تنها کلیدی که برای گشودن راز زندگانی او وجود دارد، بی اثر می شود یا اگر میداند داند خاطره گسسته و بی بار است مثلا می گوید به نظرم همون سالی که آن آقای بلنگت مقصودش خیلی تاش است پیش آقا میآمد آمد تابلوی دورگرد را ساخته است و یا همون وقتی که مستر آمریکایی از استاد تابلو می خرید نه یک سال پس از آن زن ناشناس مدل می نشست و یا وقتی که پسر دوم او را به مدرسه فرستادن ترهی از او در حالی که زیر درخ افتاده و خوابیده بود کشیده است با وجود این آقا رجب داناتر از آن است که جلوه می دهد. من نمی توانم تصور کنم که استاد می توانسته از ده سال و برک بیشتر با چنین مرد ابلهی زندگی کند بنابراین اگر سری در کار استاد باشد این دهقان همدانی هم از آن با خبر است منتها من از خودم می پرسم چرا به کسی چیزی نمی گوید؟ چقدر سعی کردم مطلبی ولو مختصر درباره زن ناشناس که به عقیده من چشمهای مرموز باید از آن او باشد از این آقا رجب بدساورم نمیداند از یادش رفته به خاطر ندارد که استادان پرده را تمام کردی یا نه نمیداند که این زن چه سنی داشته یادش نیست که خوشگل بوده یا نه فراموشش شده که چند مدت می‌آمد و میرفت این را میداند که استاد وقتی کارش تمام میشد، او را به خانه می‌رساند تو به خانه این زن هیچ وقت نرفتی نه یادم نیست فکر کنم که خانش به یادت بیاید. یادم نیست. پرده ای که آقا از این زن کشیده یادت هست؟ نه آقا. زن لخت نبود؟ نه آقا دین آینش محکم بود. میدانم. اما آقا آخر زن‌های لختم کشیده است؟ بله آنها را آقا در فرنگستان کشیده. اینجا از اینجور جور پرده ها ندارد. من که ندیدم. چه میگویی گوی آقا رجب؟ بعضی از این زن‌های لخ صورت دختران ایرانی را دارند. چطور می آقا رجب را قانع کرد؟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 مرد است این آقا رجب نمی توانم باور کنم آدمی که شاید دوازده سال برکه بیشتر در خانه استاد زندگی کرده و همه کاری او بوده نداند چرا استاد را گرفتند ساعتها در دفتر مدرسه نقاشی که امروز به نام استاد خانده می شود من با این آقا رجب صحبت کردم و او خوب فهمیده که من چقدر علاقه من به آشنایی با این زن ناشناس هستم آقا رجب با قیافه آرام حرفها را میشنود می نمیزند. در خطوط صورتش علائم تعجب و شادی و غم و جهدیده نمی شود گاهی انسان حق داشت از خود بپرسد که آیا این مرد آرام و متین است یا ابله خرفت؟ نمی نمیشد فهمید که حافظش سست است و یا اینکه مهر به لب زده هرچه از او میپرسیدی آرام و متین جواب میداد؟ آره نه اما چشمهایش در عین حال گاهی برق میزد مثل اینکه دندان روی چکر میگذاشت و سوار کننده را نامحرم میدانست وی با کشف رازهای استاد به مقدسات توهین کرده است. در عین آرامش یک حالت استراب در وجود او می‌دولید و آقا رجب می کشید که پریشانی بر او غلبه نکند و نقابی که بر صورت زده بود نیفتد. گاهی حوصله من سر می‌رفت و به خود می‌گفتم که خودش را به نفهمی می‌زند و هوشیارتر از آن حدیث که خود را جلفه می‌دهد. اینها همه به جای خود درست باید در نظر داشت که من در این مدرسه نقاشی اکنون از شهری بر به بعد نازم هستم و آقا رجب ناسلامتی فراش این مدرسه و زیر دستان من است چند روز پیش از او میپرسم؟ آقا رجب هیچ صورت این زن که مدل آقا بود به خاطرت نمیآید چرا آقا؟ خب می توانی بگوییی که چه شکلی بوده است؟ بله تعجبکنم و از او پرسیدم چطور یک مرتبه صورتش به خاطر آمد؟ در جواب من گفت برای اینکه چند روز پیش آمده بود اینجا چه میگویی آقا رجب؟ اینجا چه کار داشت؟ آقا جزو تماشا بود؟ چه روزی آمد اینجا؟ روز پنجشنبه بعد از ظهر چرا پس به من نگفتی؟ ای آقا، میخوایید چه کار کنید؟ خوب نیز وقتی زنی میآید تابله های آقا را تماشا کند، من بیایم شما را بیخودی خبر کنم. هفته های متوالی تمام روزهایی که موزه مدرسه برای تماشای عموم مردم باز است، خودم تمام روز در تالار موزه نشستم و به آقای رجب دستور دادم به محض اینکه زن ناشناس آمد به من خبر بدهد اما زن نیامد آن روز پنجشنبه کلیه جوازهایی را که به نام واردین صادر شده بود بازدید کردم پانزده نفر زن آمده بودند از میان آنها پنج زن تنها بودند و اسم هیچ کدام از آنها با اسامی خانم و دختران آشنای استاد تطبیق نمی کرد از آن روز به بعد خودم دفتری ترتیب دادم و نام مراجعین موزه را ثبت کردم و اسامی پنج زنی را که تنها آمده بودند به خاطر سپردم. فقط یکی از آنها اسم شخصی خودش را نوشته و نام خانوادگیش را پنهان کرده بود. اسم این زن فرنگیس بود. ناگهان برقی به شعور من زد. زن ناشناس روز پنجشنبه به هفته دی آمده بود. و روز هفته دی سال 1317 روز مرگ استاد است.